تو غنده مچررره تو نگاه تو ضدمت آخره سر به تیق تو غنده مچررره تو نگاه تو ضروت آخره سفقای تو پرچم محشره سرکه به هوایت تو می پرهشهلا فطاللیحل عطالی برو تظال یاه ای در شرحلا فطاللیحل عطالی برو تظال یاه ای در. اشک من جنون من عاشق من من من یا هیدار علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا یا علی یا علی ش مرتب بزن تو شب تولده همه دل ها شاده تو شب تولده همه دل ها شاده. قبله حاجتمون پنجره فولاد از مدد حضرت سلطانه چه رهبرم اهل خراسانه عوض شده نقشه این کشور مشهد تو مرکز ایرانه از مدد حضرت سلطان که رهبرم اهل خراسانه عوض شده نقشه این کشور بشهد تو مرکز ایرانه سلطان توسی شمس و شموسی اومدم برا پابوسی سلطان توسی شمس و شموسی اومدم برا بگو سلطان توستی، اومدم براو پا بوسی سلطان توستی. یاد میگیری اومدم براو پا بوسی سلطان توستی. وستی واسه اینونیا کرامت محسوسه واسه اینونیا کرامت محسوسه به تلا واسه زیارت مخصوصه واسه اینونیا کرامت محسوسه به تلا برو وسازیارد محس لیلی من این دلو مجنون کن مگا به این بینسر وسامون کن هستی راه ظاهرت بارو یه قهوه ی حضرت مهمن کن لیلی من این مجنون اجنون کن نگاه این بی سر و سامون کن خسته راه زاهرت ما را یه قهوه ی حضرت مهمون کن یه چای حضرت مهمون کن سلطان شمس و شاموسی اومدم بر کابول بگو سلطان توسی. tushlughi haram delam o chardam tushlughi haram delam o chardam dar halle chardam tushlughi haram delam o chardam dar و سرای تو عجب گوز به ظاهر همیشه گین زهروس ساق خونت شب به شباجول پر میشه با مشک متع سلطان تو سی شمس و شموسی اومدم مدن باران پابوسی سلطان تو سی شمس و شموسی اومدم شمس و مدن باران پابوسی الا لا الا مناد اوچه هیات بیت الزهرا سلام الله عليها. btzsir